به فکر مختصری پسنداز نباید باشیم پسنداز یعنی داشتن داشتن خوشبختی نمی آورد درست همانطور که نداشتن ثروت آسایش نمی آورد درست همانطور که فقر شادی را باید بیرون خطه داشتن و نداشتن جستجو کرد با وجود این شاید بد نباشد که برای یک مرض احتمالی و اسارت در بیمارستان مبلغی هم پسنداز داشته باشیم. عصر عصری که مردم متوسط فقط از ترس پزشکان پسنداز میکنند و راست است که من نیز به شدت از آنها میترسم نه به خاطر خودم که بیش عمرم را گذراندم بل به خاطر بچه هایی که باید زبانم لال نیم جانشان را مثل سگ به دندان بگیرم و از این بیمارستان به آن بیمارستان بکشم و زار بزنم دکتر به دادم برس به دادم برس دکتر بچم هم. همه زندگیم هم. التماس می کنم. شوخی می کنند اصل که می گویند قلب برخی از پزشکان از سنگ سختتر است من اگر به جای سنگ بودم این بی‌حرمتی به خیش را هرگز تحمل نمی‌کردم. نرمی سنگ در برابر سختی قلب منجمد بسیاری از پزشکان نرمی پرسینه کاکایی هاست در برابر الماس. دست تو لطافت نسیم گلگوی سوالان تو را دارد. دست‌های تو خاطره دست‌های تو نیست. نخستین بار است و نخستین لحظه که دست تو را به دست می‌گیرم. تراوت یک پرده نقاشی که ابرکار باشد، هرگز از میان نمی رود. لطافت و جرفایی یک غزل ناب هم. چرا دست های انسان باید چیزی از یک پرده نقاشی و یک غزل ناب کم داشته باشد؟ ما عادت کرده‌ایم که رابطه ها را فرسوده کنیم، به هر ارتباط فرسوده‌ای. لطافت خود را از دست میدهد. اصل ها روز خوبی برای ولگردی است. دوست داری که به دیدن یک نمایشگاه نقاشی برویم و بعد به دیدن یک فیلم؟ همیشه ها به همین شکل؟ نه، می توانیم پس و پیش کنیم. اول به سینما، بعد به نگارخانه. خیلی زحمت کشیدی واقعا نه؟ هیچ فیلم خوبی روی پرده نیست در سال مگر چند فیلم از عباس کیا رستمی ابراهیم حاتمی کیا محسن مخملباف علی حاتمی و یکی دو عاشق صادق سینما نشان می‌دهند. از استثناء که بگذریم الباقی تمام گرد های زشت و تحوا از فیلم بیگانه است. و یا محصول زهن های فقیر مانده منحرف بیمار روی سینما هیچ حسابی نمی توانیم باز کنیم. اگر ماهی یک فیلم قابل دیدن هم روی پرده می آمد باز قابل برنامه ریزی بود. اما به زودی اینطور خواهد شد. بچه های خوبی در راهند به زودی از بزودی سخن خواهیم گفت. ابتزال مرا متلاشی می کند. خیلی از اینها که فیلم می سازند اول باید دوره انسان بودن ببینند. بعد دوره فیلم سازی. اما بچه ها فیلم می خواهند. من نمی توانم فرصت بدم که بچه هایم این چیزهای نفرت انگیز را به نام فیلم کودکان ببینند. انسان سیاسی یعنی انسانی که تسلیم فساد نمی شود. من باید به تو بگویم؟ نه نه ما هنوز و همچنان سیاسی هستیم. می رویم به نمایشگاه درخت های سندوزی نقاش و پیکر ساز. رفتیم. باید حس کنیم که او با درختها چه کرده است باید حس کنیم پس برای چه به نمایشگاه های نقاشی می نگاه کن نقاش چیزهایی بر درخت افسوده است و چیزهایی از آن کاسته در مجموع انسان پنداری درخت انسان پنداری کل طبیعت نقاش را واداشته است که درختان را همان گونه ببیند که آن داستان نویس دیده است درختان ایستاده میمیرند و آن شاعر جنگلی هستی تو ای انسان تو میپرسی نقاش درختان را به اسارت انسانها درآورده یا انسانها را اسیر درختها کرده است میگویم حرف از اسارت نیست حرف از حس مشابهت است اصل گفت اما از عشق هیچ خبری نیست درد هست سرفکندگی فروماندگی زلت به صلیب کشیده شدن اما از عشق هیچ خبری نیست که اگر بود این خبر هزار درخت را جابجا میکرد. هر درختی از دید سندوزی ایسای مسلوبیست و گاه نه یک ایسا که چندین نه تنها تنه انسانی است خجل، خجل از انسان نبودن، بل هر شاخه و گاه حتی تمامی شاخه ها مسلوب شدگانی هستند، میخکوب. با این وجود، تمایل به در درانها حیرت انگیز است، چنان فرو رفتن در خاک که سنگ اینگونه در تن سخر فرو نرفته است. اما جای عشق کجاست؟ سوال من همچنان باقی است شاید نقاش در عشق باخته است که از آن باختن سخن میگوید در باختن هم واژه عشق را باید یافت اگر میشناختمش به او میگفتم شناختن نمیخواهد آنجا ایستاده است با آن ردای بلند و قامت خدنگ زنها باید خاطرش را خیلی بخواهند ممکن است اما با وجود این تنهاست گمان نمیبرم که او با این درخت ها در چنان سطحی مانده باشد اگر نمانده باشد باید از پوست گذشته باشد و به عشق رسیده باشد به او بگو بگو که حتی با یک قطره چکان می توانست یک قطره عشق در این قده بزرگ بچکاند تا ببیند که چگونه همان یک قطره رنگ ظرف و مزروف را یک جا عوض میکند به او میگویم اما الان دورش را روشنفکران و زنان خود نما گرفتند چیزی حس نخواهد کرد واجه های ما با واجه های دیگران مخلوط خواهد شد و ترکیب بسیار بدی خواهد ساخت. نگاه کن، به ما هم از همین لبخندها خواهد زد. خالی و قشنگ باشد. یک بار شاید در جای دیگر فرصت کنیم به او بگوییم که هنر آفرینشی عاشقانه است. هفته دیگر نمایشگاه حجاج تبا است. آنجا تا به خواهی عشق خواهیدید دوستش دارم غلام حسین نامی را هم به دلیل وهمی که در آثارش هست وهمی که به دلیل رنگ مهگونش میتواند وهمی عاشقانه باشد در قلعه های قدیمی علی اکبر صادقی را هم دوست دارم جعفری را هم شباهنگی را هم عصر خوبی است نقاشان بزرگی داریم و نویسندگان و شاعران بزرگی که تو یکی از ایشان نیستی و پیکر سازان قدرتمندی چقدر خوب است که می توانیم با هم حرف بزنیم اینقدر جوان و پرخون این عین راه رفتن در کوهستان های دور است سرچال، علمچال، دماوند، ناز، کهار، سپیتکو ریه های عشق را آبی روشن می کند بدون مکالمه عشق به جان کندن میافتد. و چقدر هم سخت است دوام بخشیدن به این گفتگوهای آبی روشن به خصوص برای آنها که زندگی مشترک را با عشق آغاز نکردند برای آنها به اعتقاد من آسانتر است چون در آستانه تجربه هستند نه در کمرکش یا بخش آن دانه را دیرتر کاشتهاند فرصت بیشتری هم برای باغبانیش دارند همه چیز در اراده ماست به جز مرگ و دیگر معجزهی هم در کار نیست دست های تو از نمایشگاه بیرون آمده ایم. زیر ریز باران شبان پیاده می رویم سیر نگاه کردیم برای ده روزمان بس است. عشق خوب دیدن است، خوب چشیدن، خوب بویدن، خوب زمزمه کردن و خوب لمس کردن. عشق مجموعی از تجربه‌های زنده دائمی طاهرانه است و این همه نه فقط تعریف عشق است که تعریف زندگی هم هست. و از اینجاست که حس میکنی عشق و زندگی یک مسئله بیش نیست و عجیب است که هنر هم چیزی جز همین نیست هنر، عشق و زندگی یک چیز است به سه صورت یا حتی به یک صورت دوام دلخواه بی زمان